بینندگان دوستان گرامی امیدوارم همه بهروز و پیروز باشید بهروز بهرام است پیروز سوشی است یعنی همیشه با بون خودتان باشید همیشه وصل به بون کیخان به بون خرد باشید این تصویر انسان است. یکی از بزرگترین موضوع های فرهنگ ایران تصویر انسان است تصویر انسان در فرهنگ ایران یک موضوع فوق العاده مهم است چون از بزرگترین و شاید بزرگترین تصویری است که بشریت از انسان به وجود آورد است. قانون اساسی در کشورهای های باختر و همچنین حقوق بشر از تصویر خاصی از انسان رویده و گسترده شده چرا ما از تعریف انسان میزنیم و چرا صحبت از تصویر انسان می شود تعریف تعریف معمولا از فلسفه می آید و بسیار تنگ است و دو و این که تصویر یا صورت قنایی دارد که این قنای انسان،, انسان یا هر چیز دیگر را بیشتر می نماید ما امروزه زیاد در جزئیات مسائل قرض می شویم و جزیات مسائل روز در سیاست به کلی غرق می شویم و بونمایه آن مسائل را فراموش می کنیم. ما به کف دریا ناظریم و به اعماق دریا نگاه نمی کنیم و یا آن را نادیده می‌گیریم مثلا سراسر قرآن و انجیل و تورات اگر دقت شود دیده می شود که بست و گسترشی داستان های آدم و حوا و داستان ابراهیم و داستان نوح و چند داستان دیگر از اینها سراسر این کتاب ها رویده و دایده می شوند این داستان ها این تصاویر باید تغییر بکنند تا تغییری در اندیشه ها داده شود و به علتی که اینها تغییر نکرده اند خواه اندیشه های آنها نیز تغییر نمی و این اینی که اندکی در جزئیات بذرکاری بشه. مثل اینکه امروده در اسلام های رسیم می ولی اون پایه که این بمایه که این داستان هاست اینها در همون فرم گذشته باقی می مانند و خواه بلافاصله بلا بعد از اینی که اشتیاب زیادی راجب این بزرکاری های تازه این تازه های تازه نگریسته می شود یک دفعه چهره قول محیب پدیدار می شود این تصاویر تطاویر تیفی از گسترش بر برعکس مفادم که در یهودیت و مسیحیت و اسلام تیفی از تعلیلات همین صورت ها همین چند داستان است که چند گونه گسرده میشوند، شوند بیاید میشوند، می ولی برقم همه این تعبیلات و در مغز و گوهر رو آنها با هم مشترکند. نیست که مثلا می بینیم که هم در همون داستان ابراهیم که اسحاق یا اسماعیل را قربانی می کند. این مفهوم این قربانی در همه این ادیان شیبه های مختلفی از تعبیل پیدا میکنند ولی در باطن همه یکی هستند در مسیحیت ابراهیم خدا میشود و که پسرش را عیسی هست قربانی میکند برای نجات همه بشریت از بنا میبینید اینا هر کدام یک تعبیل دیگر پیدا میکند ولی در, در اسلام و یهودیت قربانی یکی از معناش بخشیدن امتیاز و برگزیدگی است کسی که قربانی می شود خانواده او برگزیده می شود این است که مسئله تنها قربانی اید، قربانی اسحاق یا اسماعیل نیست بلکه مسئله این است که کدام از این امت ها یا نژادها برتری پیدا میکنند و در همه اینها چه یهوه چه پدر آسمانی چه اله اله انسان را خرق می کند من این واژه اله را در تفاوت با واژه خدا بکار کار دارم خدا را خدا به مفهوم ایرانی را و تصویری که ایران از خدا می کشد نمی شد هم این همانی با واژه اله یا یهوه یا الله یا, اسم، یا پدر آسمانی داد این رو بیشتر, بیشتر بحث خواهیم کرد این تفاوت رو باید گذارد چون محروم خدا را هی هرگز نمی شود به جای الله بکار بود همینطور الله را به جای مفهوم خدا نمی شود بکار بود یهوه و الله و پدر آسمانی خالق هم و انسان مخلوق در فرهنگ ایرانی خدا خلق نمیکنه. خدا میآفرینه. اینها دو چیز آفرینش و خلقت دو چیز مختلفه. هرگز نباید جای خلقت آفرینش گذاشت. این اینها در هم ریختگی مفسر کردن فرهنگ ها و مفاهیم و ها انسان و گیتی در فرهنگ ایران از خدا پیدایش می‌یابند. در بلوچی هنوز پیدایش و پدید پیدا شدن یعنی زایش و زایید شدن ببینید همینجا با مفهوم لمیلد و لمیولد تفاوت پیدا میکند. خدا نمی زاید. خدا نمی روید. یعنی اله نمی روید اله نمی در حالی که خدا در فرهنگ ایران می و می زاید. حالا در یهودیت و مسیحیت و اسلام یهوه یا پدر آسمانی یا الله فراسوی خود فراسوی گوهر خود فراسوی ذات خود انسانی با امر خود خرب می کنن که همگوهر و همسرشت با آنها نیست وقتی می وقتی می هم همگوهر و همسرشت است این است که در مفهوم در فرهنگ ایران خدا یعنی آفریننده برابر با آفریده است این مفهوم بنیاد فرهنگ ایران است از این که همه آفریدگان با هم برابرند هم. چون همه آفریده از یک خدایم خواه نخواه همه سرشت خدا را دارند گوهر خدا را دارند همه فرزند خدا هستند همه امتداد خدا هستند حالا این در فرنگ ایران خدا است که گیتی و انسان از آن میروید در می آید. پدیدار می شود. این بیان عشق بوده است. این بیان عشق است. انسان و گیتی تو خدا هستند. انسان هر چیزی را که می, آف می آفریند همون را دوست دارد. این دوستی سرازیر می شود. مهر محل در فرهنگ ایران این همگوهر شدن به دیگری است. خدا هم تخمه هم کمال تخمه هست. خدا بی گیتی به انسان هنوز خدا نیست. در گیتی به بالاخره در انسان تخم خدا، مینوی خدا تخم گسترده، خدای گسترده می شد. در یهودیت و مسیحیت و اسلام انسان اصالت ندارد. چون خالق نیستن. انسان چون خالق نیست اصالت ندارد. فقط الله و یهوه و فدر آسمانی خالق چیزی اصالت دارد که خرق می کنه. یا در فرهنگ ایران چیزی اصالت دارد که می نه در فرهنگ ایران انسان همونقدر اصالت دارد که خدا این است که حقوق بشر با اصالت انسان با اصالت خرد انسان بنیاد گداره می شود شما بدون اصالت دادن به انسان دادن به خلال انسان هرگز می توانید حقوق و بشر ایجاد کنید یعنی انسان ها باید اینجور فکر کنند نه که حقوق و بشر را به انوان صادرات از اروپا به ایران وارد کنید اینجور این گونه تغییر پیدا نمی شود این تصویر خدا و انسان است که باید تغییر بکنند این است که هرگز نباید واجهی خدا یا بق بق را به جای الله و یا یهوه یا پدر آسمانی گذاشت و به کار بود همه این ترجمه های قرآن همه ترجمه است که گمراه کننده برای خاطر که خدا را به جای الله میگذارند الله خدا نیست و خدا هم الله نیست. این گونه مشتبه ها سبب ناپیدا شدن و ناماشخص شدن فرهنگ ایران میکردن با این جور واجها که در سرجمه گذاشته داشته می شود اصلا معنای اصلا هسته و مغز فرهنگ ایران نابود ساخته می شود مثلا در قرآن می که الله از گل انسان را آفرید در این ترجمه می گذارن از خاک، اما خاک در فرهنگ ایران معنای توخ دارد دارد اونو وقت باز معنای آفرینش پیدا می خاک خاکینه یعنی توخ خاک تخم است این معنای به کلی فرد دارد تحقیر, تحقیر دنیا تحیر خاک زمین توخ یعنی خاک در فرهنگ ایران اصل آفرینش بوده است یعنی از تخم است که همه چیز می روید خدا تخم است پس بنابراین ما نمی توانیم این سهل انگاره ها را بکنیم و این واژه خدا را جای الله بگذاریم این سبب از بین بردن پرهنگی ایران می یهوه و پدر آسمانی و الله در اثر داشتن این قدرت خلاقه از این قدرت مطلق است که خلق می کنن. خدا در فرهنگ ایران تخمی است که درخت گیتی از آن میج می‌روید. خدا تحول پیدا می‌کند به گیتی و انسان میوه و بر این درخت است. حالا در, در فرهنگ ایران به درخت چی میگفتند؟ ون میگفتن. امروز ما مثلا میگوییم نارون. این ون از اسم واقعی درخت در فرهنگ ایران هست. ون ولی بنا ب یعنی به هم بافته یعنی عشق یعنی چی یعنی این در عشق است که خدا گیتی می شود در پرهنگ ایران مسئله اینه که چگونه تخمی که خداست به گیتی و انسان، تحول مییابد این است که درختی که سیمور گور است نشسته در اسمش غان واس تخمک است این وان درخت عشق است این درخت عشق است که خوشه تمام جانوران و انسان فراز این درخت است که نامش سیمور است این خوشه نامش خدا خوشه است که همه جانها دانه‌های این خوشه است هم در کردی بعض هم به معنای تخم گیا هست هم به معنای گم هست یعنی ناپیدا خدا در بهتتش تخم گم است ناپیدا و در گیتی و در انسان پیدا می شود اون چه در خدا ناپیدا و گم هست در گیتی و انسان و دیدنی و گرفتنی میشون ملموس میشون خدا ملموس میشون خدا مذه داره. این است که در آثار بهادین پدر مولوی میبینیم میگه همیشه در من مذه خدا میسوند خدا در کسه و در تنوع تنبو و دیدنی و ملموس میشون خدا گیتی و انسان میشوند گیتی و انسان در فرهنگ ایران امتداد گسترش په شده تیف شده تخم ناپیدای هستند که خدا را هم دو تصویر مختلف هم از انسان هم از خدا گیتی و انسان از خدا بیرون افشانده می شوند. این برمایه فرهنگ ایران به کلی فرهنگ ایران را از یهودیت و مسیحیت و اسلام جدا می این, این، این یک فرهنگ ایران هست که این ویژگی‌ها را دارد این بنمایه فرهنگ ایران حابی اندیشه های در اندیشه های دیگری درباره باری سیاست و اجتماع و قانون و هنر و فلسفه و دین و روان و روح و زمیر ایران است ما این تصویر را که گفتش می دهیم، سیاست دیگر داریم اجتماع دیگر داریم قانون دیگر داریم هنر دیگر داریم فلسفه دیگر داریم دین دیگر داریم ما از درک این اندیشه های فرهنگ ایران دور و محجور افتادیم چون این علل گنابون داره. ما باید علل این را دریابیم که چرا از این فرهنگ خود ما دور افتادیم از این اندیشه ها. درخط دادیم یکی این که این تفکر این تفکر خلقتی که بن مایه ادیان ابراهیمی است اندیکه پیدایشی را تحقیر و زشت و بد ساختم عموم الله علیه و علیه کفایت علیه می‌کنه این یعنی تحقیر اندیکه پیدایشی است اینها را اندیکه پیدایشی را کف و علت دیگر آن است که ما امروزه مفهوم اندیش شدیم و دیگر صورت اندیش نیستیم عقل ما تفکر ما با مفهوم اندیشی آلت کرده این است که صورت اندیشی رو تحقیر میکنیم تخیل خیال بافی خود بهترین نمونه تحقیر این مفهوم است. چون که در آقا صورت اندیشی صورت برابر با فکر بود با اندیشه بود حالا دیگر صورت تخیل خیال بافی بیارزه شده است محملات شده است افکار ماحال شده است حالا نیاخان ما در صورت میانی هنوز ملت همیشه در مسائل بنیادی زندگی است در صورت میاندیشد. برای همین است که قصدورها هنوز نفوز خود را در ملت دارند با آمدن تلویزیون این موج صورت اندیشی از نو قوی تر شده است. مفاهیم انتظایی باید صورت پیدا کنند. به صورت برگردانیده شوند تا ملموس رو محسوس کردند. در فرهنگ ایران مفاهیم انتظایی باید صورت بشوند بعدش از صورت واقعیت بشوند این خدا در آقاد در اون تقم ناقیده در واقع همین مفهوم همین صورت انتظایش که وقتی که صورت شد دیدنی شد این دوره این تحبول اولش هست تحبول بعدش این است که صورت تبدیل می شود به واقعیت به جان به زندگی این را یک بار بحث بسیار مفصلی خواهیم کرد که این فرهنگ ایران را در این تحولات خدا در فازهای مختلف در مرحله های مختلف نشان بدهیم حالا این اصولها و داستانهایی را که روزگاری عقل محکوم عقل محکوم خرافه میشمرد و تحقیر می کرد همان ها حاوی افکار و... و حاوی از حاوی افکار قنیه هستن که در مفاهیم نمیجون مفاهیم روشن ولی تنگند صورت دارای مفاهیم متعدد است این است که در خودش یک نوع تاریکی هم داره ما برای درک اون صورت اندیشه ها معمولا آنها را تشریحات مینامیم این خود واژه تشریح تحویر آنهاست در اونها اونها نماینده یک مفهومی باید باشند. این است که ما سعی میکنه همیشه این صورتها را تغییر به یک مفهوم بدیم مثلا وقتی که با این خدایان ایران برکرد میکنیم سعی میکنیم برابر با یک مفهوم بکنیم مثلا خدای روشنی خدای فران خدای فلان مفهوم در صورتی که این صورتها پر از مفاهیم هستند، یک مفهوم نیستن شما سروش رو نمیتونید بگوید فقط آورنده بحیه است یا آورنده پیام درونی وجدان است. این سروش یا سیمر یا فران این خدایان همه معانی مختلف و گنابون دارن در یک محکوم کستره میشوند این هست که شناختش هم دوشوار هست. ما اموزه میکوشیم از هر صورتی یک مفهوم مفهوم بیرون آوریم و اون صورت را نماینده اون مفهوم بدانیم این مفهوم ما از تشبیه هست این است که اصل صورت اندیشی را با این کارت تخیر میکنیم این اگر ما دقت بکنیم می‌بینیم که یک صورت که امروز تبدیل به یک واژه شده است در کتاب لغت میبینیم که حوشه‌ای از مفاهیم دارد بسیاری از این واژه ها که این ها در اصل صورت بودند اینها امروز یک مجموعه از مفاهیم ناجورند ما ترجمه میکنیم این مفاهیم چطور در زیر این واژه آمدن در زیر یک واژه این مفاهیم مختلف هستند علتش این است که اینها در اصل یک صورت بودند که در اسطوره‌های کهن با هم پیوند داده می‌شدند و و بیان اون صورت بودند حالا تبدیل شدن مجموعی از مفاهیم که از هم بریده و ناجور با هم و ما تا اون تا پیوند این مفاهیم رو با هم دیگر پیدا نکنیم به اون صورت نمیرسیم مثلا در کردی اترانه که گفتیم بزر هم معنای تخم هم معنای گم است برای ما این دو مفهوم صورت بزر را در ذهن ما نمی آورد مثلا این مثال ها روشن می کند این نقطه چون که این نقطه خیلی حساس هست من مجبورم یکی دو تا مثال بیاورم. مثلا در کردی دین دارای معانی مختلف هست. غیر از مفهوم امروزی که از این ما داره یکی به معنای زیدن یکی به معنای زاییدن است، یکی به معنای زیبانگیست اگر این سه مفهوم اگر این سه معنا با هم بیا میزن یکی بشم اون را صورتی را خواهیم داشت که مردم در اون روزگار از دین میفهمیدند یعنی ما تجربه اونها را از دین موقعی خواهیم داشت که این سه مفهومی که برای ما امروز کاملن از هم بریدن دین هم معنای دیدن دارد هم معنای زاییدن هم معنای دیوانگی برای ما اینها سه معقوله یک کاملا از هم دو داردن بلی وقتی اینها به هم, چ... هم چسبیده بشن و یک صورت پیدا کنن اون وقت ما به مفهوم به معانی را که مردم در روزگار میاندیشیدن ته میبریم برای برای ما دین یک چیزی جداگانه از دیدن شده است چیزی دوگانه از داییدن شده است چیز دو از دیبانگی شده است چون ما دیگر صورتی را که آنها از این صورت دین داشتن نداریم تجربه آنها از دین به کلی با تجربه امروزه از دین پرد داشتن حالا چه برداشتن؟ خیلی ساده و خلاصه من این را میگویم که ببینید چه فرهنگ عجیبی ما داشتیم. خدا سیمون همون دین بوده است که در درون هر انسان در درون هر انسانی چه مرد این خدا وقتی که از انسان زائیده شد. انسان از دیدن زیبایی او محب و, محب و دیوانه میشود. ببین. الان این سه محبوی به هم چه چه و یک صورت رو تشکیل دادم اگر ما بتوانیم اون صورت رو از دین در ذهن زنده سازیم خواهیم دید که این سه مفهوم سه برایان سه, سه چهره یک صورت هم. و بدون هم بیمعنا هستند. مثلا چهره چون که این واجه در فرهنگ ایران نقش بودرگی را باز میکنم که همون معنای صورت را داشته بستند چهره برای ما دو معنی دارند البته در کتاب های لغت در حالت معمولی فقط به صورت و قیافه و رو چهره میبونند ولی معنای اصلی است تخم و دات و گوهر چرا؟ در فرهنگ ایران برای آن که چهره برای اونها هم تخمی بود که از آن گیاه یا درخت میروید و هم اون میوه و هسته و تخمی بود که فراز گیاه یا درد قدیدار می شون. این از که فراز سر گروش در نقش مشهد مرقا بخواست می بینیم که اول تخم است بعد یک سه تا تقم که از اینها سه تا ساقه یا تنه بیرون می و فرازش بعد یک تقم این بیان چیترا بودن چهره بودن انسان است. یعنی چی؟ یعنی بیان راستیش. بیان است یعنی اون چه در درون تاریخ است، در روشنی هم هست گیتی و انسان باطن و گوهر خدا هست خدا راست هست. یعنی اون چه در گوهرش دارد انسان می شود و گیتی می شود ببینید این به کلی مفهوم متفاوتی از فرهنگ ایران به ما میده که ادیان ابراهیمی به ما میدن. آغاز و انجام بونه گمنام و تاریخ با صورتهای گوناگون پیدا شدید به هم بسته و یک وحدت تشکیل می دادن. این است که اسم سیمور همای چهرازاد هما همای شهرزاد بود است چهرازاد چیت آکات این واژه در عب. چیت آکات چیت در زیر در زیر زمین آکات کات فراز هست اوج چه کار این باراست. این کارت رو در کردی به جمجمه میگوه و به فباره و آغاز هم میگوه پس این این است که از شروع به پیدایش میکنن پس ولی این, این ها به هم بستن چیتر هم باطن هم اونزاد گوهر هم به پیدایش به هم بستگی دارن این بستگی این پار ظاهر از باطن این معنای راستی داشت خدا بونه همه راستی هست اگر خدا راست نباشد خود او کند دروغ بگوید فرید بدهد خدا نیست ما در مفاهیم جدا از هم چیم چنان که میبینید داریدن دیدن پران این جدا و دیگر کاری به آمیختگی این مفاهیم با هم در یک صورت نداریم. چرا؟ اگر چنین کاری را بکنیم سر به فرهنگ بر برمیگردیم. و چرا این اینطور شده است پاره از هم شده است، برای خاطر اینکه کههدار ها میترایان و زرداشتیان و مسلمانان کوشیدن که اون صورت را، که این مفاهیم را با هم میچهد از هم پاره سازن با مهد سازن. و به جایش این مفاهیم پاره از هم را کداشتن این روش بوده است که به کار بردن و با، چون با اون صورت محالف بودن اون صورت وقتی که ما، صورت دیم را که دید دیدیم در ذهن بیاوریم این صورت درست مفهومی از دین به ما میدهد که بکنیم با مفهومی که اینها از دین به ما دادن سبتانه پس بنابراین این صورت باید بشه. این است که یک انده مفاهیم پارفوره از هم در زیر واجه دین در کتاب رغتنامه با حفظ این ای انسان ای انسان در فرهنگ ایران حالا می رویم پس از اینه که این مقدمه رو را گفتیم به صورت و اینها که نشان داده بشود که صورت چه اهمیتی دارد و در این صورتها چه, جع... چه معانی جرفی هستند این است که می پردازیم به صورت انسان تا در این اندکی دقیقتر بشه این چنان که گفته شد صورت انسان در فرهنگ ایران یک صورت کاملا بی در میان فرهنگ هست و این بزرگترین اول نشه فرهنگ ایران است این صورت بسیار قنی و پرمعنا و جرب است که اصلا قابل مقایسه با مفهوم آدم و هوا یا پرومته یونانی نیست این رو بهترین شاهدش همین بیان این موضوع است ایرانیان دنیا را روند آفرینش را در تصاویر در دو تصیفشونن تصاویر رویش و زایش. ولی رویش و زایش را با هم این همانی می دادن. این خودش یک انتظاع است چون که این دو چیز مختلف بودن اینها را با هم یکی می گیردن. رویش برابر و زایش. این یک انتظار است. یعنی پکر می شود. دیگر زایدن زایدن نیست رویدن هم رویدن نیست این ترکیب رویش و زایش و این همان دادن رویش با زایش یک صورت انتضاعی میشد نه زایش زایش بود نه رویش دیگر رویش بود اینکه خدا زهدانی است که جهان را میزاید یا اینکه تخمی است که جهان از آن میروید این یک صورت انتضاعی است با مطرومه که محمد رسول الله می پنداش لم یلد و لم با این فرض دارد این یک سو از فرهنگ گذاشته بوده است مهم این ما باید در این صورت ها همیشه ببینیم که این آنها چه معنای جرفی در این صورت ها نه اینه که خود را مشغول سرگرم تنگبینی در این صورت ها بکنیم محمد در قرآن الله را لمیلت و لمیولت می داند و با این هم بر ضد این خدایان می جنگد. ولی این یک تو اتفاهم از فرهنگ این خدایان بوده است. در واقع ضدیتی با این خدایان است. این در در واقع شن... ناشناس... ناشناسایی این خدایان بودن عدم شناخت به این خدایان بودن آنها به دین سادگی خدا را زاینده یا روینده نمی انسان در رد کردن یک اندیشه قنی وقتی میخواد یک اندیشه قنی را رد بکنه چی بار معمولاً معمولا اون را ساده بود قراسه بود تنگ می سازند اونگاهان را رد میکنند رسول الله هم همین کار را کرده است معمولاً مفهوم با روشنی کار یک مفهوم باید تعریف بکنن تعریف این است که مردبندی بکنن تنها مردبندی این نیست که یک خط دورش بکشی بلکه این رو باید ببروشید و درست عقل با این بریدن کار و روشن سازی با بریدن یعنی با ساده سازی کار دارن خواه همیشه با قصاوت کار چون بریدن زاحت کردن است کار کردن است و این است که همیشه روشن پیدا با پیدایش قدرت با پیدایش پیش دانش کار دارد این خدایان خدایان روشنی خدایان که روشن بیسازند یکی باید قتی باشند که ببرند این است که باید قدرتمند باشند یکی باید پیش دانش داشته باشند همه چیز را پیشا پیش بدهد پس مفهوم الوهیت این است که روشنی خدایی چه شد یک سیستم فلسفی اساس کار قرار بگیرد چه در ادیان نوری یا ابراهیمی با اینها با ساده با مفهوم الله یهوه یا پدر آسمانی با ساده سازی جهان و زندگی کار دارند در ادیان نوری پیچیدگی ها و قنای انسان ها از بین میروند اینها در فرهنگ در خدایی بودن الله و یهوه و خیلی آسمانی دنیا رو خیلی آسان خیلی ساده میکنن خیلی آسانی میشهد مقوم کرد همه به اراده او بود بودن وقتی ما آقا این شده است این اراده الله بود. این شده است اراده الله بود. اراده یهوه این است که همه چیز را با اراده ای که از قدرت مطلقشان و پیش برمیخیزد برمی‌فید، خلق می‌کنه. این اصل فهم فاحمانه می شود. همه چیزها فقط به که اراده باز می‌گردند. همه چیزها به همین مسئولیت اله باز میگرد. در حالی که جهان بینی زن خدایی، جهان ب... یعنی همون جهان بینی سیمرغی، جهان بینی و رنگی نیست. این است که خیلی خیلی ها معیوس می علتش است که ما با این سادگی ها عادت کردیم وقتی که می خواهیم به این فرهنگ خود ما بالگردیم با یک قنای رو, ش... رو رو می شویم که دیگر فکر ما چنین عادتی را ندارد که فرهنگ سی بسیار غنی و تیبدار است پیدایش چیزی از چیز دیگر جانشینه خلقت به عمر می شون. این مفهوم پیدایش و تحول تحول از یک چیزی به چیزی دیگر این از خود خدا شروع می شوند عشق و آمیختگی که در فرهنگ ایران ها این در این در برابر مفهوم پدیده قدرت قرار می کنن. در فرهنگ ایران عشق و در ادیان ابراهیمی قدرت اساس کار رو محبت و رحم و رحمانیت اینها بزک کار بشند اینا صورت فقط صورت داخلی می شود جستجو در فرنگ ایران جستجو و پجوهش در برابر پیشدانشی الله و یهوه و پدر آسمان خرامید اکنون به طور کوتاه ما این تصویر آفرینش و تصویر انسان را در این زنجیره پیدایشها بررسی میکنی. این پیدایش بر بنیاد محکوم تحول تحول خدا تحول خدا به این دارن همطور در محکوم روند آفرینش این مفهوم گسترده شده است پیدایش جهان از یک چخب آغاز میشه من این این را فیلن خیلی ساده میگویم کم کم به طور گسترده و مفصل به این موضوع خواهیم پردام پیدایش جهان از یک تخب آغاز می این ایرانی کشاورز بوده است خواه نخواه از این تصاویر بهره مرده است اما این تصاویر انتظائی شده تصاویر همون تخب نیست بلکه یک صورت انتظائی شدن پیدایش جهان از یک تخب آغاز می این تخب همون پنج روز آخر سال است که این همانی با پنج چهره سیمون دارم. پنج چهره سیمون در با هم جمع میشوند این تخمی میشوند که جهان از آن میبیند این تخم تخم سیمون است الهویات دردوشتی آمدن سرودهای دردوشت را یعنی گاتا را به پنج بخش کرد و هر کدام از این بخشها را این همانی با یکی از این رودها در از این پنج روز به این وسیله اندیشه اصلی فرهنگ ایران را تغییر دادند و مرسد کردند با این تغییر میخواستند بگویند که جهان که جهان آفرینش از فرودهای های که به زردوش رح کرده شده از آفرینش شده این اصل قضیه بود چرا؟ این اسمار را دادند و در واقع اسم های اولیه در افواه مردم باقی مانده است و اینها را ما هم در برحان قاتل میتوانیم پیدا کنیم هم در آثار الباقی اثر عبوره میتوانیم که مردم این چه نام به این پنج بود میدارن این, این ها که اصالت دارند. اون روایت بعدی روایت زردشتی است که این پنج،, پنج روز را به نام های سرود های زردوشتو است، در سواتی که ها هرگز نام روز را نام سرود نمی کردن. روز همیشه این همانی با خدا داشته است. هر روزی این همانی با یکی از خدایان ایران داشته هست. نام یک سرود داشت. حالا از این پنج روز خمسه محترفه یا اندرگاه یا پنجه دزدیده این است که سیم، تخم سیمون است خود سیمون است از این چی میشود شود در ظرف چهل روز آسمان عبری میروید این آسمان عبری سیمور است از این آسمان عبری که ها باران است پس از چهل روز تخمی پلید میآید این تخم،, تخم آب است خود آبیست و این این پنج روز نخستین هم با نخستین جشن بزرگ ایران است. که جشن جشنی که آب پدید تخم آب پری میشود که جشن عملا شیممر است از این تخم آب آب پیدا می پیدا میشود گسترده مید این مبون ذهنی گسترده تربه میشود و درخت آب میشود برای ما چیز تندآور است ولی آنها همه را یک رستن جهان را رشتن رست گیاه یک گیاه میدادند تمام گیاه جهان یک درخت بود است این فاز اولش بود حالا این پس از اینکه آب پیدایش یافت از درخت آب تخم زمین پدیدار میشود حالا فهمو طول میکشید درخت آب پیدا. روی داری شد پس از این ه... تخم زمین که پیداد شد از تخم زمین هفتاد رو زمین می رونی. و از این پنج از این چی پیدا میشه پیدا می شد از این تخم زمین که گسترده می شد گیاه تخم گیاه پیدا می شد بعدش در 25 روز تخم گیاه گیاه شد و اون وقت از گیاه در هفتاد و پنج روز تخم گوشوند که از بیاه پیدا شده بود میروید و گوشوند یعنی جانوران مقدس بیآزار پیداش میاد و بعدش در فراز این درخت گوشوند درخت جانهای بیازار تخمی پیدا می شد که از این این تخم تخم انسان بود و از این انسان در هفتاد روز میروید و در پایان این هفتا دود بر فراز درخت انسان چی, چی پیدا می شد؟ همون تخم سیمور پیدا می شد. یعنی همون خمسه مسترقه که گفتیم. و از اون خمسه مسترقه جهان پیدا می شد. این, ها این یک تصویر بسیار لطیفیست. پیدایش اولا دیده می شود که این تصویر نشان که پیدایش همچی جهان خدا همه پیدایش از هم دیگره. اصل بریدنی نیست. از تخم انسان خدا پیدا میشه. از خدا آب پیدا کرد. از آب زمین، از زمین گیاه، از گیاه جانور، از جانور انسان و از انسان در آخر باز خدا. این چرا این جهان، جهان به هم پیوسته. جهان عشق، جهان مهن. همه جهان را عشق دارد. همه جهان به هم آمیخته است. ببینید چه تصویری چه معنایی در این تصویر هست. خدایی بریده از کیهان نیست د... اون پنج روزی که بر فراز درخت جانور بون انسان است حالا میپردازیم می، می به گاهنبار پنجم که تخمی است که از درخت جانور پیدا شده و از این درخت جانوران درخت گوسپن گ و سپن تا یعنی جان مقدس گوسبند امروز رو نداشتن گوسبند و عنای جان مقدس داشتن حالا از این تخم, این تخم انسان روه، این تخم انسان تصویر انسان است از این بون انسان میروه این بون چیز؟ این تنجرون پنش تخم بودارستن که با هم آمیخ و یک تخم با هم یک تخم شدن به این تخم به این تخم ها به طور کلی آذر یا آگر یا آتش میگفتن این طبما اسمش آذر و آگر و آتش بودن این تصویر آتش هیچ ربطی با آتش سوزنده که ما در ذهن داریم ندارد. این است که آتشیده اصلا معنایی این نداشته است که آتش سوزنده در آنجا هست یا آتش پرسته در بلکه این روند پیگاهاش از خدا از مر اجا پرستیده می شد یعنی, پر... یعنی همه گیاه همه جان ها باید پرسداری بشن باید نگهداری بشن پرورده بشن این است که واژه آتش ربطی به آتش سودان ما نداره واژه آزه در حوضوارش به معنای زهدان و زن آموزگاه و آگر در کتاب لغت خودمان برهان قاتلین ها معنای زهدان دارد در کردی هم آگر معنای آتش دارد هم آور که مثل آگر آتش معنای آبستان دارد پس بنابراین میبینین این صورت یک معنای دیگر داشت امروز برای ما آبستنی و آتش دوی مفهوم جداست ولی اونها این وقتی که بر میگردانیم به اون صورت اول معنای اصلی را میفهمیم یعنی فرهنگ اصلی رو را در بنابراین در فرهنگ ایران شش جشن فوق العاده مهم که جشت های آفرینش بودن وجود داشت در سال و این, که این ها جشنهای پیدایش بودن و این بزرگترین جشت ایران بودن و خیلی جای افسوس هست که این جشت های بزرگ از یاد ملت ایران رفته چونکه چون که این جشن, این جشن ها بیان این بود که جهان جهان عشق است. و ما این اندیشه را در زندگی تبعید و ترک کردیم حالا این تخم پنجوم یا جشن پنجوم مرکب از پنج خدا بود من فقط اسم این ها را میبرم چون که بحث این روی این ها، بحث بسیار است که نیاز به گفتارهای متعدد دارد. این پنج خدا که بونه هر انسانی بودن بونه همه انسان ها بودن کی بود؟ کیا بودن؟ یکی سروش بود یکی رشن بود یکی پروردین که همون سیمر باشد یکی رام که همون زهرب یا افرادیت هست یکی بهرام بود این پنج خدا که با هم نیام بونه انسان شد. انسان که در فرهنگ زن خدایی جمشید باشد جم و جماع جفت بودن این اصلا کرد خود جمع و جمع به معناش معناش معنای عشق هست. چون که یعنی همزاد همزاد معناش دو قلوم همزاد معناش عشق نه انسان که جمعشی باشه از این پنج خدا می روید سروش و رشد خدایان لایاننده و پدیدار سازنده و حسله و مغل تخم انسان سه خدا یکی فروردین هست که سیمور باشد یکی رام است یکی بهرام فروردین همون ارتاق یا سیمور یا فروخ یا خورم رام زن خدای موسیقی و شعر و رقص و خدای شناخ خدای دانش یعنی موسیقی و رقص و شعر با هم دیگر با شناخت با یک ریشه داشته این خیلی مهم است شناخت باید آهنگین باشد باید رقصآمیز باشد باید شاعرانه باشد این مکوومی ایرانی بوده است از شناخت بلی رام خدای بر برپایه جستجو بود نام من جویه جوهندگی شناخت بر پایه جوهندگی شناخت بر پایه پیشانی نم، که الله و یهوه و پدر آسمانی حالا بهرام خدای سالک بود خدای جهانگر بود که این بعدش معنای سلوک و اینها از همین سلوک این اسامی اصا همین و سالک از همین واجه آمده است خدای سالک رام همون حالا این رام چی بود؟ رام همه روان انسان روان رام خدای یعنی دخره یعنی افروزیت در هر انسان و در واقع رام و سیمور دو روی یک سکه بودن معمولا رام به شکل دختر سیمور نشان داده می شود در, در نقش ها دیده می شود که رام در حال رقص از سیمور زاده می شود. این بزرگترین نماد پیدایش گیتی پیدایش جهان به وجود آمدن در وجد آمدن است. وجد و وجود یکیست وجد در وجود آمدن با رقص است. رقص و شعر و موسیقی اساس پیدایش یکیست حالا سیمور همون ارتا بود که به نام فرورد بدن شد فرورد ورد یعنی بالیدم یعنی روی هارا در متون زرتشت شده از پرورشی امروز مشهور شده است به فروها و فروهر. و این همون سیمور در هر انسان است. این دو بخش که یعنی بهرام باشد بهرام اصل نرینه جهان بود که در انسان هم ارتوفر و رام دو روی یک چه بودند اینها با هم دیگر اصل مادینه جهان بودن که در هر انسان بودن. این است که عشق جاوید این بهرام و سیمر بود که بن هستی در هر انسانی بود سپس که این فرهنگ مورد تعقیب و آزار شدید زرتشتیان و مسلمانان قرار گرفت مردم نامهای دیگر به این سیمر و بهرام دادند حافظ و عبید زاکان این دو خدا را به نام گلکهره و خورند می شراخدن. از عشق جاودان این اصل نرینه و اصل مادینه بود که هم کیهان و هم زندگی و هم زمان و هم انسان پیدایش میاد باید ویژگی های سیمور و رام و بهرام و سروش و را به دقت شنا تا در که ایرانیان چه تصویر بینظیری از سطرت انسان کشیدند. داستان آدم و هوا در ادیان ابراهیمی و داستان پرومتیوت یونانی به گرد این تصویر نمی رسن. این نه برای افتخار ملی،, ملی بودن است این برای مقایسه کردن دقیق اینها هر آدم منطفی اینها را مقایسه کنه، تشخیص میدهد که این بزرگترین تصویری است که بشریت از انسان کشیده است با این تصویر است که می جهانی دیگر آراد جهانی دیگر آفری جهان نو آفری این همان تصویر است که در شعر مولوی این عبارت را یافته است تو مرق چاپری تا برآسمان پری تو مرق چاپری تا برآسمان پری تو از کجا و با اون نردوان به کجا نردبان معمولا از به انبیاء و کتاب مقدس گفته می شود. تو احتیاج به هیچ واسطه نداری تو احتیاج نه به محمد نه به ایسا نه به یهوه داری تو خودت همون سیمرغی و هر بینشی از تو معراج به آسمان است و ما درباره این معراج یک بار بسیار مفصلی خواهیم داشت که معراج یک روند اندیشیدن برای هر انسان بوده است و ویژه هیچ کدام از انبیا نبود است خوشو قرآن